دوازدهان. برای سالگرد خانم جون که روز پنج شنبه بود آقا رزا و فاطم خانم هم از اسفهان آمده بودند یک بار دیگر به بهانه سالگرد خانم جون همه دوره هم جمع شدند و خانه ما شلوغ شد از قرار همان شب امیر با آقا قرار یک مسافرت دو سه روزه را گذاشته بود که من از آن بی خبر بودم قرار شده بود اگر آقا رزا بتواند مرخصی بگیرد یکی دو هفته بعد خبر بدهد. بعد از سالگرد خانم جون بود که من یک جمعه دیگر یعنی در حقیقت برای آخرین بار با محمد رفتم کو، که کاش نمی رفتم. آن روز دوباره دو ست موضوع باعث سوء تفاهم و ناراحتی من شد و دوباره روز از نو روزی از نو. یادم است که آن روز سر یا اخمهایش سخت توی هم بود. بر من که اصلا برای مهم نبود معلوم بود برای امیر خیلی مهم است که بدانت چه شده؟ چون مدام به شوخی حرف را به اخم های درهم سریا میکشید و غیر مستقیم سعی داشت از موضوع سر درآورد. محمد هم نمیدانم به خاطر امیر یا چون برای خودش هم مهم بود بالاخره از خود سریا علت ناراحتیش را پرسید و معلوم شد که سریّا هم برای جدا شدن دوستش سیمین از نامزدش ناراحت است و هم از جواد گلایه دارد که برنامه مسافرت دو سه روزه آنها را رو هم زده گویا قرار گذاشته بودند با دو نفر از دوستانشان همراه سیمین و به قول سریّا برای تمدد اعصاب سیمین به مسافرت بروند محمد با آرامش و خیلی راحت گفت خب در مورد قضیه سیمین که به نظر من ناراحتیت موردی نداره چون اگه درست فکر کنی متوجه میشی که باید برای دوستت خوشحال هم باشی چرا فکر نمی کنی اگه ازدواج میکرد پای بقیه عمرش رو با ناراحتی میگذروند؟ کی گفته به خاطر یه بله یا نه آدم باید یه عمرو بسوزه و بسازه از تو بعیده به جای اینکه مسیر افکار اونو عوض کنی خودت هم شدی هم پای اون سرعیه جواب داد این برای منو و شماست که گفتنش آسونه توی جامعه ما یه دختر با یه پسر خیلی فرق میکنه اون درد خودش ها فراموشش بشه حرف مردم و این و اون رو که نمیتونه فراموش کنه و ندیده بگیره از اون گذاشته یه زن با یه مرد خیلی فرق میکنه اون دو سال جوونیشو پای این آدم گذاشته محمد حرفش را قرد کرد و مصمم و محکم گفت ببین از همینجاست که داری اشتباه می و غلط نتیجه گیری میکنی. موضوع دقیقا همینه که چون با یه مرد فرق میکنه و درست به این علت که دو سال وقت گذاشته باید خوشحال باشه. ببینم حالا چون دختر و مسئله براش فرق میکنه، اگه میرفت و چند سال بدبختی میکشید و با یه بچه به این نتیجه می رسید که اشتباه کرده، اون وقت بهتر بود؟ راحتتر فراموش می یا اگه بقیه عمرش و فدای این دو سال می کرد دیگه احساس مقبون بودن نمیکرد. هنوز نپای بچه ای در کار بوده نه سالهایی زیادی که بگه عمرم از بین رفته پس نامزدی که میگن برای چیه؟ بهتر نیست به جایی اینکه فکر کنه سرش کلاه رفته از این طرف به قضیه نگاه کنه و ببینه که خدا چقدر دوستش داشته که از اول راه کمکش کرده؟ درزم همین که جسارت داشته که بگه اشتباه کردم خودش یه هنر رو کار بزرگه نه شکست. حالا شما به بهجاین که مثل اون زانوی غم بگیری بهتر نیست صورت درست قضیه رو بش نشون بدی؟ چرا بهش نمیگه حرف خال خامباجی و اینو اونو به قول خودتون مردم و بندازه دور؟ توی مصیبت هایی که اون باید میکشید و رنجایی که بعدم باید میبرد این مردم و خال خامواج ها چقدر میتونستن شریک باشن و سهم داشته باشن؟ مسلمن اگه بی تفاوت نبودن غیر از یک تصف و سرتکون دادن که ایداد و بیداد دختر بدبخ شد صحبی رو قبول می کردن اون وقت این با عقل جور در میاد آدم واسه کسایی که تو زندگیش خونسا هستن و کارشون فقط حرف زدن رنج بکشه حرف باد هواست به خاطر باد آدم عاقل که هیچ آدم احمقم هم حاضر نیست خودش رنج بده حاضره؟ برای اولین بار دیدم سری یا جوابی برای گفتن ندارد و سخت به فکر فرو رفته است و باز توی چشمهایش تحسین و تشکر از محمد موج میزند و این برای من کشنده بود شاید آن روز همه به فکر فرو رفتند و از حرفهای محمد نتیجه و درسی گرفتند غیر از من بیشعور و کم عقل که همه فکرم معطوف این بود که اصلا چرا ناراحتی سریا برای محمد باید مهم باشد تا به خواهد راه پیش پایش بگذارد و یک ساعت در موردش حرف بزند و چرا سریا با آن نگاه مالا از تشکر و احترام به محمد نگاه می کند همه ساکت بودند که باز امیر که انگار با سکوت دشمن خونی بود سر حرف را باز کرد و گفت خب اینکه از قضیه سیمین خانوم و قضاوت جناب قاضی لطفا قربان به شکایت بعدی هم رسیدگی بفرماییم فرماییم آنقدر شوخی کرد که حرف را به مسئله مسافرت سریا کشاند و محمد این بار هم از سرعیا حمایت کرد و آتش غضب و حرس و حسادت من چندین برابر شد جواد گفت محمد تو قضاوت کن درسته سه چهار تا دختر تک و تنها پاشن برن شهر غریب مسافرت. محمد در کمال ناباوری همه ما و شاید حتی خود سریا راحت گفت: اگه نظر من رو میخوای آره درسته. دهان هر سه ما از تعجب و دهان سریا شاید از مسرت و حیرت باز مانده بود. طوری که همه ناگهان ایستادند. ولی سرعیه زودتر خودش را جمع و جور کرد و راه افتاد. چند قدمی که دور شد جواد با هرس گفت. تو اصلا میفهمی چی میگی؟ محمد جدی و خیلی راحت گفت. آره میفهمم. اینم میفهمم که خواهر تو نه یه دختر بی و پاست، نه یه دختر بچه و نه کم عقل و سر به هواست. و اینکه از روی احترام از تو اجازه میگیر و روی حرفتم حرف نمیزنه بازم از فهمیده بودنشه. جواد غذبناکی گفت: <تصفيق> «یعنی چی؟ یعنی بزارم بره؟ میدونی ممکنه چه اتفاقایی بیفته؟ من چطوری اطمینان کنم که محمد با خون سردی حرفش را قطع کرد و همونطور که راه میافتاد گفت خواهرت اونقدر عاقل هست که راه رو از چاه تشخیص بده و خودت هم اینو خوب میدونی. در ضمن میدونم مسئله اعتماد و اطمینان تو به خود سرعی هم نیست. جواد جون، نمیشه که تو هر وقت دلت میخواد اونو عاقل بدونی هر وقت برات صرف نکرد، نه. خب حالا تو قبول داری خواهرت عاقل و بالغ و قابل اتمینانه یا نه؟ جواد من, و من کنان گفت. خب آره، ولی... محمد گفت پس دیگه ولی نداره چون تو الان تنها به دلیل دختر بودنش داری مانش میشی مگه نه اونم حق داره توقع داشته باشه که تو به صرف جنسیتش روش قضاوت نکنی منظورم رو میفهمی؟ محمد میگفت و من حرس میخوردم از تعریفهایش از سریا و طرفداریهایش خون خونم را میخورد و لحظه به لحظه تحملم کمتر میشد این بود که وقتی آخرهای مسیر امیر گفت راستی بچه ها اگه آقا زنگ بزنه همین هفته دیگه مسافرتمون حتمیه دیگر از هرس مثل مار زخمی به خودم میپیچیدم. تا آن روز اصلا نشنیده بودم که قرار است با جواد و سریا به مسافرت برویم. گرچه محمد شوق و تمایل خاصی نشان نداد. ولی همین خبر که سریا و جواد هم میخواهند همراه ما بیایند کافی بود تا چشم عقلم را کاملا کور کند. حسادت نابینایم کرده بود و در حد انفجار عصبانی بودم. این شد که آن شب بدترین مشاجره و بگو مگوی ما و در حقیقت آخرین مشاجره بین ما درگرفت. درگیری که باعث شد بالاخره رو در روی هم به و سر هم فریاد بکشیم. و به دنبالش چهار روز حتی یک کلمه هم بینمان رد و بدل نشد و دوباره شبها جدا خوابیدیم شب اول رفتم روی مبل خوابیدم و از فردا شب محمد بالشتش را برداشت و بدون کلمه حرف روی زمین خوابید و با اینکه دیگر دانشگاه نداشت صبحای زود از خانه بیرون میرفت و شبها دیر وقت برمیگشت ساکت و خاموش و درم. در این وضع آشفته من از دهان امیر شنیدم که قرار است سه به شمال برویم. تصمیم گرفتم هر جوری شده برنامه‌شان را به هم بزنم. دوشنبه صبح بود که محترم خانم زنگ زد و گفت چون فاطمه خانم و آقا رزا آیند ما هم شب برویم آنجا و دور هم باشیم. ولی من جواب درست و حسابی ندادم. فقط در فکر این بودم که چطور برنامه آنها را یا لاعقل رفتن محمد را به هم بزنم آن شب کمی زودتر آمد به محض اینکه آمد رفتم بالا و برای خواب آماده شدم آمد در را بست و در حالی که به من نگاه نمی کرد گفت لباس تو بپوش اگه چیزی هم برای مسافرت می بردار بریم خونه مامانینا؟ از اجباری که به جای تمایل توی حرف زدنش بود، جری شدم. گفتم، من نه مسافرت میام نه خونه مامانینا. عصبی و بی گفت، بچه در زیدن امیار، ماما منتظر شامان، خب تشریف ببرین؟ دستش را به کمرش زده بود و نگاه می کرد. سرم را بلند نکردم. ولی از صدای تند هایش شدت عصبانیتش را حس میکردم. کمی مکس کرد ولی بعد گوشی تلفن را برداشت. تون تون شماره گرفت و به محترم خانم گفت چون برای مسافرت آماده نیستیم شب آنجا نمی رویم. وقتی محترم خانم بالاخره راضی شد گوشی را گذاشت و تا آخر شب هیچ نگفت و من که به خیال خودم موفق شده بودم خوشحال بودم. موقع خواب باز بدون اینکه به من نگاه کند یا نزدیکم هم بیاید. همانطور که روی زمین دراز میکشید گفت: «من فردا میرم تو هم باید بیای. خشک با تحکم و سرد. عسه عمیق دلم را سوزاند. رفتار منزجرانه اش راه عقب نشینی را برایم صد می دلم برای چشمهایش برای نگاه های مهربانش برای مهناز گفتنهایش و برای آغوشش تنگ بود و او مثل سنگ، انگار با دشمنش حرف می‌زد و رفتار می‌کرد غرق اندوه گفتم اونا که باید بیان میان من نمیام خشک و عصبی گفت اونا میان هیچی تو هم باید بیای روی باید مکس کرد و بایدی محکم گفت: کاش میفهمید که از دوریش چه رنج میبرم و چقدر محتاج کمی نرمش از طرف او هستم ولی خب هر عملی عکسال عملی دارد من هم اکسالعمله رفتارهای خودم را میدیدم و دیگر چارهای جز ادامه راه نمیدیدم با همان لحن خودش گفتم: چرا؟ چون من میگم؟ لهنش آنقدر کوبنده بود که دلم لرزید ولی با این حال گفتم ولی من نمیام گفتم و پشت به او دراز کشیدم یک دفعه چنان تند و سریع بلند شد و بالای سرم ایستاد که ترسیدم و ناخداگاه من هم از جا پریدم و نشستم شمرده شمرده گفت نشنیدم. چی گفتی؟ با وحشت و در عین ناباوری احساس کردم آنقدر عصبانی است که اگر جواب ندهم هر کاری ممکن است بکند. هم ترسیده بودم، هم دلم گرفته بود و قصدار بودم. با خود گفتم به خاطر آنها حتی حاضر است با من تا این درجه از بدخلقی پیش برود. سجری که من میکشم برایش مهم نیست. فقط مهم این است که قولی که به آنها داده انجام شود. ناخداگاه باز فقط به فکر خودم بودم نه زجری که او از دست من و کارهای من به خاطر هیچو پوچ می کشید به هر حال عشق به موقع به کمکم آمد چانه لرزید عشقهایم سرازیر شد و در حالی که رویم را برمیگرداندم گریان گفتم هیچی گفتم اگه باید باشه میام خشم و قصه با هم وجودم را می سوزند به خاطر اینکه ترسیده بودم از خودم و به خاطر اینکه رفتارش تا این حد عوض شده بود از او بدم میامد. این همان محمد من بود او بود که حالا ممکن بود حتی توی گوشم بزند و من اینقدر بدبخت و ذلیل بودم که بترسم در حالی که هنوز عصبانیت توی صدایش حس میشد. دستش را دراز کرد. بازویم را گرفت و صدایم زد. ولی من بیشعور چکار کردم. دستش را با عصبانیت پس زدم و فریاد زدم. به من دست نزد. گفتی باید بیام منم میام. دیگه نمیخوام ببینم نه صدا تو بشنوم. بعد پشت به او روی تخت افتادم و زار زدم. مدتی طولانی بالای سرم ایستاده بود ولی دیگر صدایم نزد و چیزی نگفت و من اینقدر گریه کردم تا خوابم برد. خوابی آشفته و پریشان. خواب دیدم. خوابی آشفته که بعدها به صادق بودنش پی بردم. خواب دیدم توی خانه قدیمی مال هستم و صدای از آن می آید. خانه شلوغ است. و آدم های آشنا و ناآشنایی زیادی در حیات در رفت آمد هستند و من عجله دارم که توی آن شلوقی وضو بگیرم حلقه درآوردم در و روی رف حوز گذاشتم ولی میبینم آب حوز خزه بسته و لجنگ گرفته و تیره است با ناراحتی سر بلند کردم که ببینم بقیه از این آب کثیف ناراحت نیستند که آن طرف حوز روی تخت های چوبی چشمم به خانم جون افتاد حیرت زده و خوشحال فریاد زدم و خانم جون را صدا زدم ولی خانم جون نگاهی تلخ و سرد به من کرد و رویش را برگرداند دوباره صدا زدم دوباره و دوباره و هر بار خانم جون با ناراحتی از من رو برگرداند مستعصل دست بردم حلقم را بردارم و بروم بیش خانم جون ولی حلقه هم سر خورد و توی حوز گم شد. توی آب تیره و سیاه. وحشت زده سر بلند کردم. اما دیگر هیچ کس نبود. هیچکس، کس. نه خانم جون نه کس دیگری. من بودم و خانه خالی و آب تیره و لچم بسته. درمانده و وحشت زده فریاد می زدم که با تکان دست های محمد بیدار شدم. چشمهایم را باز کردم. بالای سرم بود. خیص عرق بودم. محکم دستایش را گرفتم و صدایش زدم. محمد! به خواب نترس خواب دیدی. میترسم. بقلم کن. نیاد شب بودم. نه حرفهایی که زده بودم. فقط دلم آرامش گرمای آغوشش را میخواست که نبود. کنارم نشست و دستم رو توی دستش گرفت و نگه داشت. ولی حرفی نزد و من با عذاب دوباره خوابم برد. وقتی چشم باز کردم که مادر صدایم میزد. هوا روشن بود و محمد نبود. با گیجی مادر را نگاه می کردم که می گفت. مادر پاشو، ساعت نزدیک هفته. محمد سفارش کرد ساعت هشتونیم آماده باشی. خودش کجاست؟ نمیدونم، صبح زود با امیر رفتم بیرون سفارش کرد صداد بزنم. ناله کنان از جا بلند شدم. آرام آرام یاد دیشب افتادم و باز زهر غم به جانم ریخت. پس هنوز است رفته و پیغام داده که بیدارم کنند. پریشان و سردرگم فکر کردم شاید آب و حمام بتواند آرامش را به من برگرداند. به مادر که اصرار میکرد زودتر بروم و صبحانه بخورم گفتم میرم دوش میگیرم بعد میان پایین. زیر دوش بود که یک دفعه یاد خواب دیشه افتادم و خانم جون یعنی خوابم تعبیر دارد؟ خانم جون از من ناراحت است؟ چرا؟ فکرم از آنچه بود مخشوشتر شد و خسته تر از قبل از حمام بیرون آمدم. صدای شاد و شنگول امیر از پایین آمد که سر به سر مادر میگذاشت یعنی محمد هم برگشته بود مقصم کار نمیکرد بلا تکلیف و منتظر با حول لب تخت نشستم صدای امیر که آوازخان از پله ها بالا میآمد نزدیک میشد مهناز مهناز. چقدر شاد و سر حال بود درست برعکسم. بله، اگه پرانسس بیدار شدن تشریف ببرن صبحانه را میل کنند ساعت هفت و نیم بام است. جواب ندادم و فکر کردم پس محمد نیامد، یعنی کجا رفته بود؟ سرم را با دستهایم گرفته بودم و در دنیای فکر و خیالهای آشفته اوته میخوردم که صدای مادر از پایین بلند شد مهناز، بلاخره نمیخوای سبونه بخوری؟ حتی نای داد زدن هم نداشتم. از جا بلند شدم تا چیزی تنم کنم ولی به لباس ها نگاه می کردم و حواسم جای دیگر بود. برای همین هر چه فکر می کردم چه بپوشم و چه بردارم، عقلم کار نمی کرد. آخر سر، پریشان و گیج چون باطمه جلوی کمد نشستم و سرم را روی زانویم گذاشتم. فکر می هرچی کم باشه محمد پای لج بازی من میذاره در صورتی که من واقعا انقدر سرم خالی و پوک شده بود که مغزم از کار افتاده بود در اتاق باز شد و من از جا پریدم به خیال اینکه مادر است با عذر خواهی رو برگرداندم. ولی محمد بود چقدر خوشحال شدم دیدنش توی هر حالتی برای من اشتیاق بود و آرامش سعی کردم صدایم نرم و لهنم آشتی جویانه باشد و گفتم سلام سلام اما لحن و صدای او نشانی از نرمش نداشت بیروح و سرد بود حتی نیم نگاهی هم به من نکرد و آمد سراغ ساک دوباره گفتم نمیدونستم باید چی بردارم دلم میخواست حرف بزنم نمیتوانستم از او چشم بردارم. برعکس او که رسمی و خوش گفت. خودم برمیدارم. محنی از این چای جوشید. صدای مادرم بود. دست بردار نبود. الان اومدم. ولی همچنان نشسته بودم و نگاهش میکردم. بدون اینکه نگاه نگاهم کند گفت. برو سبونتو بخور دیر میشه. موهاتم خوش کن دلم میخواست بگویم تو که اصلا منو نگاه نکردی از کجا فهمیدی موهام خیسه؟ یاد گذشته ها افتادم که همیشه میگفت وقتی موهات خیسه مثل بچه های میشی که زیر بارون موندن و میگفت اونجوری هست دیدنت سیر نمیشم و حالا حتی نیم نگاهی هم به من نمیکرد. خسته تر از قبل از جا بلند شدم و به طرف در رفتم اینطوری میخوایی بری پایین راست می گفت، هنوز حاله هم تنم بود، با شوق به طرفش برگشتم، ولی همچنان مشغول کار خودش بود. به التماس افتادم. وقتی اینجوری نادیده ام میگرفت دیوانه می شدم. تمام درماندگی را توی صدایم ریختم و صدایش زدم. محمد، سرش را بلند کرد. نگاه من یک لحظه با هم تلاقی کرد. ولی او فوری از جایش بلند شد و گفت: مثل اینکه دیشب گفتی دیگه نمیخوای صدامو بشنوی. با اعتراض گفتم: محمد، من؟ حرفم را قطع کرد. آمرانه و بی تفاوت گفت: برو شبونتو بخور، دیر میشه. در ساک را بست و گذاشت روی تخت و بیرون رفت. احساس بیچارگی و بیپناهی می کردم و در عین حال قلبم آتش گرفته بود وقتی با او قهر بودم انگار دیگر توی تنم خون نبود حس و حال از من سلب میشد و بدنم توهی و مریز با بدبختی لباس پوشیدم و رفتم پایین ولی مثل این بود که کسی گلویم را سفت گرفته باشد چیزی از گلویم پایین نمی رفت. سرم منگ بود و تنم بیهست مادر صدایش زد مادر محمد آقا شما یه چیزی بزا دهنت حالا تا نهار خیلی مونده برا نهارتون کتلت درست کردم ولی حالا کتا ظهر گرسنه نمیشی؟ مثل همیشه خوشرو و معدب از مادر تشکر کرد و پشت صندلی من ایستاد لغمی که مادر برایش درست کرده بود گرفت اما ننشست و برگشت که برود بیرون اما مادر دوباره صدایش زد صد و بالاخره به اصرار مادر که برایش چای میریخت مجبور شد بنشیند به دستم که زیر چانه‌ام بود تکیه کرده بودم و موهایم از دو طرف روی صورتم ریخته بود از ترس اینکه گریه ام بگیرد چهره ام زیر موهایم پنهان کرده بودم و سعی می کردم نگاهم نه به مادر بیفتد نه محمد. مامان همانطور که استکان چای را جلوی او می گذاشت به من که آرام آرام چایم را هم میزدم گفت: «سنگ که توش نبود بس دیگه چقدر همیش میزنی؟ یه لغمه بذا دهنت میری تو ماشین حالت بد میشه. حس کردم دارد نگاهم هم می کند. ولی سرم را بلند نکردم. مادر که از آشپزخانه خانه بیرون رفت لقمه بزرگی که دستش بود نصف کرد و گذاشت جلوی من. سرم را بلند کردم و نگاهم به چشمهایش افتاد. احساس ضعفم از گروس نبود. فقط از رنج دوری و رفتار او بود. ولی او سری نگاهش را از چشمهایم دور کرد. و همانطور که از جایش بلند میشد، فقط گفت. زود باشتر دیر میشه. موهاتم باید خوش کانی. بعد استکان چای به دست بیرون رفت. بغز گلویم رو فشرد و در عین حال زهر خنده تلخی روی لب‌هایم نشست و فکر کردم نگران موهای خیسم است ولی خودم که از قصه مچاله شدهم مهم نیستم. گرسنگی برایش اهمیت دارد ولی خودم که گرسنه نگاه و توجهش هستم نه. خدایا این چه حرف احمقانه بود که زده بودم و او چه سخت مجازاتم می کرد. آن موقع نمی فهمیدم. ولی سالها بعد فکر میکردم آن تنبیه برایم لازم بوده. منتها شاید خیلی زودتر. چون دیگر از بد حادثه یا تقدیر یا بدشانسی به هر حال مهلت نشد که متنبه شوم. این شوک باید خیلی زودتر به من وارد میشد. ولی چیزی که بود آن موقع باور نمیکردم از این بدتر هم ممکن است اتفاق بیفتد و به همین دلیل ناراحت و پریشان و حیران بودم ولی احساس خطر نکردم و همین عقلم را سر جا نیاورد مگر نه اینکه ما عقد کرده بودیم پس جای نگرانی نبود بدون اینکه چیزی با خورم از پله‌ها بالا رفتم توی فکر بودم قبل از راه افتادن هر جوری بود باید با او آشتی می‌کردم تصمیم گرفتم بالا که آمد معذرت بخواهم ببوسمش و بالاخره یک جوری دلش را نرم کنم نه خودم می‌توانستم این وضع را تحمل کنم نه دلم می‌خواست جلوی دیگران اینجوری باشد توی این فکرها بودم که تلفن زنگ زد و مادر محمد را صدا زد میان پله‌ها ایستادم و گوش دادم امیر بود که معلوم بود از پیش جواد زنگ میزند و داشت در مورد جای قرار و ساعت حرکت سوال میکرد. دوباره راه افتادم. ولی هنوز دو پله بیشتر بالا نرفته بودم که باز گوشهایم تیز شد. سلام برسون. مم. کدوم؟ نمیدونم. گوشیو به خودش بده؟ بی اختیار چند پله برگشتم پایین و با دقت گوش دادم؟ کی بود؟ سلام خوبه سلامی رسونه از لحنش فهمیدم که سرعی است حال بدی شدم حسادت مثل خنجر تیزی قلبم رو زخمی کرد حرف زدنش معمولی بود ولی حالا که میانش با من اینطوری بود حتی حرف زدن معمولیش با دیگران زجرم میداد داد و دیوانه می کرد باشه، حتما، خواهش میکنم، خداحافظ دوباره دیو توی وجودم بیدار شد کینه و حسادت و هرس و لج باز مثل بختک روی قلبم افتاد و مرا از جا کند و از فکر آشتی منصرف شدم وقتی آمد و از میان کتابها یکی دوتا را برداشت و بدون حرف ساک را هم با خودش برد پایین دلم از خشم و قصب پر شده بود و این بار از عصبانیت چهار ستون بدنم می لرزید. دلم میخواست قدرت داشتم که همه چیز را به هم بریزم. وقتی صدای خدافزیش با مادر آمد یک لحظه با خود گفتم اصلا نمی الان داد می سنم و میگم نمیام. ولی فوری فکر کردم اون وقت اگه محل نظر رو بره چی؟ نه اونجوری بدتره. دقیق می کنم اگه بدون من بره. نه. نمی توانستم تحمل کنم. بلند شدم. باید حاضر می شدم. چشمم که به خودم توی آینه افتاد از رنگ پریدم جا خوردم. درست مثل مریض بودم و موهایم هنوز خیس نمی این شکلی باشم. کمی آرایش کردم. گونه ها و چشم هایم که رنگ گرفت قیافم بهتر شد. لباسم را با عجله پوشیدم و از پله ها سر و شدم. هنوز داشت با مادر حرف میزد و تشکر می کرد. مادر قرآنی را نگه داشته بود که از زیرش رد شوم او هم ایستاد تا من برسم. فکر کردم ملاحظه ی مادر را میکند نه من را اگر نه منتظر نمیشد. مامان توضیح میداد که برای توی راه چه چیزها گذاشته و از من پرسید: حولی اون ملافه برداشتی؟ او به جای من جواب داد. بله من برداشتم. فکر کردم که اصلاً به ذهنم هم خطور نکرده بود. مادر گفت بالاخره موهاتو خوش نکردی نه؟ حال دوباره باد میخوره به سرت سرما میخوری. اقلا شیشه رو باز نکن تا موهات خوش بشه. در حالی که قرآن رو میبوسیدم چشمم به چشمهایش افتاد و دیدم که با ناراحتی نگاهم میکند. میدانستم چرا؟ به خاطر آرایش بود. می دوست ندارد آرایش داشته باشم ولی به روی خودم نیاوردم. در ضمن دلم هم کمی خنک شد و فکر کردم بگذار یک خورده هم اون حرص بخورد همش که من نباید قصه بخورم.